ان یار او خانه ما جای پری بود سر تا قدمش چون پری از ای پری بود دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش بیچاره نداند است که یارش سفری بود تنها نزد راز دل من پرده بر افتاد تا بود فلک شیوه او فرد دری بود منظور خردمند من اون ماخ که او را با خسن عدب شیوه صاحب نظری بود از چنگ منش اختر بد مهر به در بود آری چکنم دولت دور قمری بود عذری به نهی دل که تو درویشی و او را در مملکت خوست سر تاجوری بود اوقات خوشان بود که با دوست به سر ره واقعی همه بی حاصلی و بی خبری بود خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین افسوس که آن گنج روان رک گذری بود خود را بکشه ای بلبل از این رشت که گل را با واد سبا وقت سرد جلوگری بود هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سهری بود